از گروه جوان و فرهنگ به نام یزدان پاک سلام و درود فراوان بر شما فرهنگ دوستان که میخواید برنامه امشب ما رو بشنوید میگن افسانه ها و قصه ها برای این به وجود اومدن که ما اونها رو بخونیم، بشنویم و گوش بدیم و بعد خودمون رو فراموش کنیم. افسانه هودن و دودن تماکار رو از سرزمین مردمان ایرلند برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم ایرلند به گردآوری فیلیپ اسمیت با ترجمه از حسنا شنبیاتی براتون انتخاب کردیم که امیدواریم رضایت کامل زگاری در سرزمین ایرلند دو کشاورز به های هودن و دودن در همسایگی هم زندگی می اونا هر کدوم مزرعی بزرگ پر از مرغ و خروس و گله های گاو و گوسمان داشتن اما با داشتن این همه ثروت باز هم احساس و خوشبختی نمی کردن. چون مرد فقیری به نام دونالد در همسایگیشون بود که در کلبه کوچک و محقری زندگی می و زمین سبز کوچکی رو در حد فاصله مزرعه‌های های اونها داشت. زمین دونالد اونقدر کوچک بود که علف های اون حتی برای سیر کردن شکم تنها گاوش هم که اسمش دیزی بود کافی نبود. برای همین دونالد خیلی کم میتونست قطره شیر یا قالبی کره از گاوش دیزی به دست بیاره. خب. از وضعیت آقای دونالد براتون گفتم اما با این وضعیت بد دونالد دو کشاورز ثروتمند یعنی هودن و دودن به اون حسابت میکرد. حتما شما هم این رو شنیدید که میگن هر کسی بیشتر داره تماشم بیشتره بنابراین هودن و دودن در حال نقشه کشیدن برای تصاحب زمین کوچیک دونالد بیچاره بعد ازور بهاری هودن مثل هر روز به خونه ی دودن رفت تا درباره ی تصاحب زمین دونالد بیچاره با اون بحث و گفتگو کنه و بالاخره به این نتیجه رسیدن که هر طوری شده دونالد رو از زمینش بیرون کنن و زمینش رو بین خودشون تقسیم کنن هودن گفت دوست بهترین راه بیرون کردن این مردک اینه که گاوش دایزی رو بکشیم دودن سری به علامت تصدیق تکون داد و گفت هودن عزیز این بهترین راه حله ولی چجوری و کی این کار رو باید انجام بدیم ها؟ هودن گفت همین شب وقتی هوا کاملا تاریک شد به طویلی دنات میریم و ترتیب کشتن دیزی رو میدیم دو دن با نظر دوستش موافقت کرد و سر کردن تا هوا کاملا تاریک تاریک بشه بعد یواشکی به طرف طویله آقای دونالد رفتن و در سیاهی شب دیزی بیچاره رو کشتن و فورا از اونجا دور شدن چند ساعت بعد دونالد بیخبر از ماجرا برای سرکشی به گاو عزیزش دیزی به طویله رفت اما با پیکره بیجان اون روبرو شد دونالد گوشه نشست و در مرگ تنها گاوش زار زار گریگه مرگ تنها گاوش خیلی ناراحت و غمین شده بود ولی از اونجایی که مرد باهوش و زرنگی بود و خودش گفت: حالا حالا که دیزی بیچاره رو از دست دادم بهتره از پوست اون بهترین استفاده رو بکنم بعد نشست و پوست دیزی رو کند و اون رو روی شونش انداخت تمام سکه رو که داشت توی جیب لباسش شیخت و به طرف شهر براه افتاد چمی مونده به بازار ایستاد و با یه چاقوی تیز چند تا سوراخ توی پوست دیزی ایجاد کرد و بعد توی هر سوراخ یه سکه یه پنی گذاشت بعد هم با اعتماد به نفس بالایی به تنها رستوران شهر رفت و پشت میزی نشست پوست رو از میخی روی دیوار آویزون کرد و سفارش یه نوشیدنی خنک داد صاحب رستوران نگاهی به لباس هایی و کثیف دونالد انداخت و با خودش گفت این جایی آدم هایی مثل این آقای فقیر نیست اون راه رو اشتباه اومده دونالد دیگه یه بار دیگه سفارش خودش رو با صدای بلند تکرار کرد میشه برام یه نوشیدنی خنک بیارین لطفاً؟ اما باز کسی به حرف اون توجهی نکرد دونالد که از این بیتوجهی سخت ناراحت شده بود رو به صاحب رستوران کرده گفت از این میترسی که نتونم از پس پرداخت پول یه نوشیدنی بر بیان؟ صاحب رستوران چیزی نگفت و نگاهش رو دوخت به لباس های کهنه و کثیف دونالد دونالد ادامه داد به این لباس های کهنه و کثیف من نگاه نکن من مرد سروتمندیم و میتونم هر چقدر سکه که بخوام از این پوست گاو در بیارم صاحب رستوران نگاهی به پوست آویزون از میخه روی دیوار انداخت و گفت منظورتون چیه؟ شما چجوری میتونین این کار رو انجام بدین؟ دونالد از جا بلند شد و با چوبی که در دست داشت زربهی به پوست زد و یهو یه سکه یه پنی روی زمین افتاد کشمایی صاحب رستوران از دیدن سکه در حیرت و تعجب فرو رفت و با هیجان گفت این, این این واقعا عالیه عالیه حاضرید این پوست رو به من بفروشین دونالد پوست خندی زد و گفت بفروشن؟ ابدن نه نه نه این پوست فروشی نیست دوست من صاحب رستوران با همون هیجان گفت اگه اگه بابتش یه سکه یه تلا بدم چی میفروشی ها؟ دونالد با خون سردی گفت گفتم که این پوست فروشی نیست. اصلا چرا وقتی هرچقدر پول میخوام به من میده باید اون رو بفروشم ها؟ و دوباره زربهی به پوست زد و یه سکه یه پنی دیگه روی زمین افتاد. بالاخره صاحب رستوران که تمک بود با اصرار زیاد تونست در قبال تعداد زیادی سکه طلا پوست رو از دونالد بخره. و همون شب دونالد با جیبهای پرسترها به خونش رد. دونالد همون شب وقتی به خونش رفت سر راه به دیدن هودن رفت و به اون گفته شب خیر هودن عزیز شب بخیر. اومدم یکی از ترازوات و قرض بگیرم هودن به اون نگاه کرد نگاهی از سر تردید و حیرت دونالد به کلبش برگشت و وقتی مطمئن شد که کسی مراقبش نیست تکه درخشان طلا رو از جیب لباسش بیرون آورد و دونه دونه وصل کرد اما متوجه تکه کرهای که هودن به ترازو چسبونده بود و آخرین تکه طلا به اون چسبیده شده بود نشد دونالد تمام طلاها رو وضع کرد و بعد ترازو رو با همون تکه تلا به همسایش یعنی هودن پس داد هودن چیزی رو که میدید نمیتونست باور کنه و بعد از رفتن دونالد خودش رو به سرعت به ی دودن رسوند و گفت شب بخیر هودن شب خیر. میدونی همسایهمون دونالد چیکار کرده اگه بشنوی میشه؟ دودن با بیصبری پرسید چیکار کرده بگو زود بگو ببینم دودن بهتندی گفت اون امشب با جیبهای پر از طلا به خونهٔ من اومد و تقاضا کرد ترازوی خودم رو بهش قرض بدم دودن با شنیدن این حرف یکی خورد و گفت کلا؟ تو از کجا فرمیدی؟ رودن ترازو رو به دودن نشون داد و گفت بیا ببین؟ این همون ترازویه که من بهش دادم و این هم تک طلاییه که به تو گفتم ببین اینجاست اینه دودن سریع تکون داد و گفت درسته بهتر همین الان بریم ببین اون توی خونش داره چیکار کار میکنه شاید به رازش بی ببریم و بعد هر دو با شتاب به طرف خونه همسایشون دونالد حرکت کردند هودن و دودن وقتی به خونه دونالد رسیدن بلا فاصله در رو باز کردن و از دیدن اون همه طلا شگفت زده شدن دونالد با دیدن اونها گفت شبتون بخیر دوستان من شبتون به خیر شما فکر کردید با کشتن گاو من میتونید منو از زمینم بیرون کنین ها نه نه شما با این کارتون کمک زیادی به من کردید من پوست گاوم رو به شهر بردم و اونو به بالاترین قیمت فروختم هودن و دودن با شنیدن این حرف فورا از خونه دونالد بیرون اومدن و فردای اون روز پوست تمام گاوها و حتی گوساله هاشون رو چندند و به شهر بردن اونا میخواستن مثل دونالد پوست گاوها و گوساله هاشون رو به قیمت بالایی بفروشن اونا وقتی به بازار شهر رسیدن با صدای بلند فریاد زدند پوست داریم پوست پوست اعلی پوست اعلی دباغ شهر اولین مشتری اونها بود اون گفت پوستاتون رو به چه قیمتی میفروشین ها؟ هودن و دودن یک صدا گفتن ما هم وزنشون طلا میخواییم دباغ پوستخندی زده گفت شما دوتا حتما دیوونه شدین مشتری بعدی پین دوز شهر بود اون گفت پوستاتون رو چند میفروشین هودن و دودن یک صدا گفتن ما هم وزنشون طلا می‌خوایم. دوز با شنیدن این جمله فریاد زد: شما داتا منو مسخره کردین. پوستتون رو برای خودتون نگه طلا! و خلاصه اونقدر سر و صدا را انداختن که مردم شهر دور و بر هودن و دودن جمع شدند. پینه دوز به مردم گفت: این دوتا دقلباز باز میگن هم وزن پوستاشون باید به اونا بدم در این موقع صاحب رستوران شهر که قبلا پوست از دونالد خریده بود وارد معرکه شد و با دیدن هودن و دودن فریاد زد بگیرین اونها، رو! بگیرین اون رو! یکی از همین دوزده دروغ دیروز روز منو فریب داد و یه پوست بی ارزش گاف رو به قیمت سی سکه یه به من فروخت مردم شهر با شنیدن این حرف صاحب رستوران با چوب و چماغ و مشت و لگد به جون هودن و دودن افتادن و حالا نزن کی بزن هودن و دودن بعد از اون کتک مفصلی که از مردم شهر نوشه کردند تصمیم گرفتن از دونالد انتقام بگیرن بنابراین یه شب به سراغ دونالد رفتن و اونا در حالی که در خواب بود توی تیسه انداختن بعد هم سر کیسه رو با تناب بستند و به طرف دریاچه براون براف دادن اونا رفتند و رفتند و خسوب و گرسنه و به اولین مسافر بین راه رسیدن و هودن گفت بهتر یکمی استراحت کنیم چیزی بخوریم بعد به طرف دریاچه بریم تا اونجا راه زیادیه دودن هم که خسته و گرسنه بود بلافاصله پذیرفت اونا قبل از ورود به مسافرخونه کیسه ای رو که دونالد توش بود مثل یک سیب زمینی کنار در مسافرخونه گذاشتن و هودن خطا بون گفت دونالد عزیز همین جا آروم و بی صدا بمون و از جات نخور ما میریم چیزی بخوریم و برگردیم مدتی گذشت و خبری از هودن و دودن نشد دونالد با خودش گفت باید قبل از اینکه اونا بیان راه فراری پیدا کنم و یهو صدایی به گوشش رسید وای خسته شدم آه اگه دستم به دو نفر بد برسه میدونم چه برای سرشون بیارم فکر کردن میتونن به امین راحتی زمین منو تصاحب کنن هم دیگه جون نداره آه دونالد که منتظر اومدن کسی بود که بلکه بتونه خودشو از اون کیسه نجات بده با شنیدن صدای مرد خوشحال شد و بلند گفت سلام مرد همونطوری که داشت از خستگی راه آه نالیم کرد و غر یه یهو ساکت شد با تعجب به دور برش نگاه کرد ولی کسی رو اطراف ندید دونالد دوباره گفت سلام دوست عزیز من اینجام مرد دوباره با تعجب و کمی وحشت به این طرف و اون طرف نگاه کرد و با ترس که که که دونالد خنده کوتاهی کرد و گفت منم دوست عزیز نترس منم دونالد تو دو مرد بدجنس منو توی این کیسه اسیر کردن مرد با تعجب این طرف اون طرف نگاهی انداخته گفت کیسه به... کدون کیسه دونالد گفت همین کیسه جلوی در مسافرخونه خونه بیا جلوتر بیا, بیا بیا بیا جلوتر منو میبینی مرد جلوتر رفت و دید بله کیسه ی کنار در مسافرخونه گذاشته شده آروم گفت دیدم دیدم تو اون تو چی می دونالد گفت گفتم که دو نفر که خیلی هم جنس و تمکارن منو توی این کیسه انداختن و حالا رفتن توی مسافرخونه تا یه چیزی کوفت کنن مرد که شابه رو بالا انداخت و گفت خب این چه ربکی به من داره ها؟ دونالد گفت ش به تو اینه که اگه تو کمکم کنی از توی این کیسه بیام بیرون پاداش خوبی بهت میدم هر چی که بخوای هر چی مهدی کشاورد کم فیک کرد و به دونالد گفت نه نه نمیتونم کار دارم یه کار خیلی مهم دونالد گفت خواهش میکنم دوست عزیز من قول میدم کمکت کنم تا به کارات برسی تازه پاداش خوبی هم از من میگیری این خیلی خوبه مرد گفت من فرصت زیادی ندارم باید دنبال اون دو نفر برجنس بگردم اونا باید همین رستاهای نزدیک باشن متاسفم متاسفم نمیتونم کمکت کنم دونالد با خواهش و اصرار گفت خواهش میکنم دوست عزیز خواهش میکنم اگر دیر بجنبیم سر کله یه هودن و دودن پیدا میشه و بعد مرد با شنیدن اسم هودن و دودن حرف دونالد رو قطع کرده گفت تو تو گفتی چی؟ کیا سر کلهشون پیدا میشه؟ بگو زود باش دونالد مکسی کرد و گفت هیچی هیچی گفتم گفتم اون دوتا بچه جنسانان میان و میانو. دیگه نمیشه مرد پرید توی حرف دونالد گفت تو تو تو گفتی هودن و دودن ره گفتی هودن و دودن دونالد مستعصر گفت خب من من گفتم من تو حرف بدی نزدم زدم مرد با خوشحالی گفت البته که نزدی البته اونا کجان کجا؟ دونالد با تعجب پرسید کیا؟ هودن و دودن؟ مرد با خوشحالی گفت البته،, البته البته البته دوست عزیز من اونا کجان؟ و بعد به کیس نزدیک شد و کیسه رو نوازش کرد و گفت تو نمیدونی چه کمک بزرگی به من کردی من تمام راه رو برای پیدا کردن اونها اومدم باید با اونا رو تصفیه حساب کنم دونالد پرسید چه تصفیه حسابی؟ مرد گفت رستاش مفصله الان باید خودم رو به مزره اونها برسونم و اونجا منتظرشون بمونم ببینم، تو میدونی مزره اونها کجاست؟ دونالد که از حرفای مرد گیج و منگ شده بود گفت البته که میدونم. اونها سالهاست که منن البته متاسفانه مرد با هیجان گفت این خیلی عالیه ببینم تو میتونی منو به مصر اونا ببری در عوض من قول میدم یک گله گوسفند و گاوم رو به تو بدم چی میگی ها قبول میکنی دونالد با خوشحالی گفت البته که قبول میکنم ولی اول باید منو از شر این کیسه لعنتی نجات بدی. دیگه دارم واقعا خفه میشم. مرد با خوشحالی گفت. <تصفح> بالاخره موفق شدم. باید یک یه گوش مالی حسابی به اون دو نفر. دونال فریاد زد: <تصفح> من دارم خفه میشم مرد. نمیخوای منو از این تو در بیاری؟ <تصفح> مرد بتوندی گفت: <تصفح> آه آه ببخشید از خوشحالی همه رو فراموش کردم. بعد کناب دوری کیسه رو باز کرد و دونالد از توی اون بیرون اومد دونالد گفت آه حالا باید این کیسه رو پر از سنگ های ریزو دراشت کنیم و درش رو مکم ببندیم اونا الان دیگه سر کلشون پیدا میشه مرد گفت خب ما باید کجا بریم دونالد گفت همیشی رو بسپار دست من دوست عزیز ما هر دو یه بلای حسابی سرشون میاریم خب حالا را بیفت به بعد هر دو نفر به سرعت از اونجا دور شده مرد توی راه برای دنال تعریف کرد که چطور هودن و دودن سالهای قبل با هزار و و نیرنگ پدرش رو فریب دادن و زمینی رو که ارسیه اجدادیشون بود از شنگ پدرش در آورده و اون رو صاحب شدن و الان اون اومده تا زمین اجدادیشون رو از هودن و دودن بدجنس پس بگیره و درس خوبی به اونا بده دنال که دل از هودن و دودن تمکار داشت نخشه ریخت تا برای همیشه از شر این دو نفر نیرنگ باز خلاص بشن اون به مرد گفت که خودش به تنهایی از پس اونا برمیاد و درس خوبی اونا میده و از مرد خواست که توی خونه منتظر بمونه تا اون نتیجه نخشش رو به اون بگه مرد هم ماجرا رو به دست دونالد سپرد و توی خونه دونالد به انتظار نتیجه نشست و اما بشنوید از هودن و دودن بعد از اینکه دونالد و مرد کیسه رو از سنگ پر کردن و در اونو با تناب مکم بستن و خودشون هم از اونجا دور شدن هودن و دودن از مسافرخونه بیرون اومدن هر کدوم یه گوشه از کیسه رو گرفتن و بلند کردن و دوباره به راه خودشون ادامه ددن دودن گفت احساس میکنم کیسه سنگیمتر شده نه؟ هودن گفت مهم نیست دیگه رای باقی نمونده تقریبا نزدیک دریاچه رسیدیم اونا رفتن و رفتن تا بالاخره به باطلاق رسیدن دودن با دیدن از باطلاق گفت بالاخره رسیدیم ب بعد دوتایی کیسه رو از روی زمین بلند کردند و توی دریاچه انداختن پودن گفت متاسفم همسایه عزیز من و هر دو شروع کردن به خندیدن و چون دیگه اونجا کاری نداشتن پس با دلهایی آروم و گامهایی سبک به طرف خونشون برافتدن اونا رفتن و رفتن تا نزدیکی خونه رسیدن و از دیدن ای که روبروشون بود درجا خوشیشون زد دونالد روی سنگی بزرگ نشسته بود و داشت برای گاو و گوسفندش سازدهنی میزد دودن و هودن با قدم های سری خودشون رو به دونالد رسوندن و از اون پرسیدن تو، تو، تو تو تو زنده یکی ممکنه، تو الان باید تای دریاچه برون باشی، نه اینجا دونالد گفت <تصحنت> شما حق رو برید کنید اما مهم نیست من باید از شما دو دوست خوبم تشکر کنم شما این بار هم به من کمک زیادی کردین شاید شنیده باشین که دریاچه یه بران از یه طرف به طرف سرزمینی سرسبز و حاصل خیز میره خود منم تا وقتی اون سرزمین رو به چشم ندیده بودم نمیتونستم این حقیقت رو باور کنم و حالا فهمیدم که حقیقت داره هودن و دودن که هنوز ناباوری توی نگاهشون موج میزد گفتن ای چطور؟ دونالد گفت این گله گاف رو میبینین؟ من اونها رو از هم جاوردم تازه، تازه این گابا کوچه ترین گابایین که تونستم از اون سرزمین سرسبز و حاصل خیز با خودم بیارم اونجا پر گاب های قوی و خیلی بزرگه دودن و هودن به طمع به آوردن گله های گاب با قدم شتابان به طرف دریاچه براون حرکت کردند. اونو وقتی به دریاچه رسیدن هر دو توی دریاچه بریدن تا به اون سرزمین سرسبز و حاصل خیزی که دونالد براشون تعریف کرده بود برسن. ولی هیچ وقت نرسیدن که نرسیدن. و دونالد افسانی ما که حالا صاحب اون همه گاو و گوستفند از طرف مهد شده بود سالهای سال در زمین خودش با شادی و آسایش زندگی کرد و مرد هم همساگی نمی شد و سالهای سال در همسایگی هم زندگی خوبی رو سپری کرد افسانه یهودن و دودن تمکار رو برتون نقل کردم از مردمان سرزمین ایرلند گرفت از کتاب افثانه های مردمی لند گردار فلیپ اسمی ترجمه حسنا شنبیاتی امیدوارم لذت برده باشین هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحبور ویراستار الهام اشع اجرا مهران دوستیصدا بردار علی آزادیان زهرا ابدالله زاده تا افسانهٔ دیگر بدرود